روک قرار داده که معروف به ارکان اسلام در رس همه شهادات این بعد از شهادت این اقامه نماز و بعد روزه رمضان و بعد پرداخت زکات. و حج خانه خدا برای کسی که استطاعت مالی و بدنی داشته باشد این پنج ربع ارکان ظاهری اسلام هستند هر کسی این پنج تا داره در ظاهر قضیه مسلمان است اما اینکه که خداوند این اعمال رو ازش قبول میکنه بر میگرده به نیتش با چه نیتی این اعمال رو انجام میده و اعمال اسلام بر ظاهر هست باطن به خداست حق نداریم در باطن کسی تفتیش بکنیم بلکه چیزی که لازم هست همدیگر را به اخلاص و طهارت درون و پاکی دل و حسن نیت تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم اما کسی که این پنی رکنو انجام بده از ظاهر قضیه مسلمان است و معصوم و دم و محفوظ و دم در ممالک اسلامی به او امنیت داده میشه خب شهادتین مشخص است از کلمه شهادت این که انسان باید چیزی را گواهی بدهد و در گواهی دادن حتماً باید آگاهی مسبق باشد اطلاع و آگاهی کامل از واقعه و جریان مسبوق باشد یعنی سبقت بگیرد یعنی انسان بر چیزی که نمیداند و اطلاع ندارد نباید شهادت بده یه نفر میاد میگه من میخوام به نفر فلانی شهادت بدم خاضی ازش میپرسه تو در جریان قضیه اونها هستید اطلاع دارید میدونید شهادت این به اسلام هم همینه این که شما بخواهید شهاده بدید که خدای واحده معبودی به حق نیست و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بر حق خداست صادق المصدوقه حتما باید با اطلاع و علم کامل باشه وگرنه گواهی تو گواهی ناقص چطوری کسی که عظمت خدا را نمیدونه خدا را نشناخته نتیجهش همین غصا میشه همین انبوه جمعیتی که دشمن در قلبشون خیمه زده این گواهی دادن بر یا گواهی دادن بر واقعیت ها نیست یکی <تصفح> صفات بارز مؤمنین اس سائحون هست در سوره توبه آیه 112 ات طائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون الامرون بالمعروف المنكر و النهون عن المنکر وبشر المؤمنین خداوند نهم تا صفت برای مؤمنین در سوره توبه آیه 112 شمارده صفت چهارم اس سائحون سیر و سیاحت فکری که تبدیل به معرفت و شناخت در مقابل عظمت خدا می شود بعد از سائهون گفته راکعون از ساجدون یعنی رکوع و سجود بعد از رکوع و سجود فکری می آید و این فکر است که با تفکر و اندیشه و نگاه کردن در عظمت خدا به اطلاع کامل می رسد میدان تفکر دو تا سوم نیست میدان تفکر آفاق و انفس هم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اما ذات خدا میدان تفکر نیست اگر کسی در ذات خدا فکر بکنه دچار شک میشه سه تا میدان دو تا باز گذاشته شده برای تفکر یکی مذهبی خدا را با قدرت بشناس بعد از اینکه انسان نگاه کرد فکر کرد این نگاه و تفکر تبدیل به معرفت شد و معرفت تبدیل به اعتقاد و باور شد و اعتقاد و باور تبدیل به اعلان شد حالا میگه اشهد ان لا اله الا الله تا قبل از اینکه شهاده بدید چند تا مرحله باید طی کنید اول نگاه اخلاانه هدفمندانه خردمندانه متدبرانه نگاه بعد از نگاه فکر بعد از فکر معرفت و شناخت بعد از معرفت و شناخت باور باور درونی و بعد از باور درونی و یقین اعلام این باور به جهانیان بعد از اینکه اعلام کردید اشهدوا الله اله الا الله حالا این اعلامو با همه هایی که اون معبود داره که تو پذیرفتید بندگی میکنید. میگن یک عربی در جاهلیت آمد بتش را کنار خانه خدا پرستش کند اول صبح بود وقتی رفت به طرف بوتش جو بیابون بوده دید که سر و کله بوتش مبلوله خیسه نگاه کرد بارندگی که نشده این طرف اون طرف دید که معذرت میخوام یه روباهی داره میره یقین دانست که این روباه تبول کرده بر سر معبودش و خداش خیلی دلش به حال خودش سوخت که خدایا من تا الان چی می و این بهت شعر رو گفت همونجا سرود ارتجالی عربون یبول و برأسه و برأسیه لقدهان من بالت علیه ثعاله بود خدایی که روبا بیاد بر سر او تبول بکند چقدر خدای است من نمیفهمیدم سالهای سال اسیرش بودم چون که قوم من می پرستیدن. و چقدر من زلیل یک ذلیل تر از خودم شدم که نتونه حرکت روبا و دفع بکنه که بر سرش تبول بکنه بعد نگاه از کجا اون باور و تفکر جرقه زد فکرش فعال شد و معنای واقعی زندگیش رو پیدا کرد وقتی پیدا کرد و فکرش فعال شد این خدای ساختگی کوشالیش رو بلند کرد زد به زمین دونست کرد گفت من همچین خدایی نمیخوام و راهشو رو پیدا کرد به سوی خدای حق تو میخوای گواهی بدی اشهد و یک بدلی و سهرانشین دیگه خیلی راحت میگه که البعیرتو تدل علا البعیر میگه وقتی در بیابان میری مدفوع شطور دلالت بر وجود شطور میده به همین راحتی فکر دیگه آثار یه شطوری که از اینجا رد شده و بعد میگه که آثار سیر و قدم دلالت بر سائر میده شخصی اینجا سائر بوده رد شده مسیر رو طی کرده بعد خودش میگه درسم هم نخونده فعال شدن فکر کاری به درس خوندن نداره درس خوندن معلومات و اطلاعاتت اضافه میکنه نه فکر تو درس خوندن اطلاعات تو هر علمی بخونی به اطلاعات تفزودی میشه سبب تقویت ایمانت میشه ولی چیزی که فکر رو تقویت میکنه تمرین فکر کردن فعال کردن فكره از کنار این مخلوقات مملو از عجایب تفاوت نگذرید و امروز رسیدن به عظمت خدا در مخلوقات خدا از هر زمانی آسانتره برید جزیره های مرجانی تراز اول دنیا رو در مالدیو ببینید. کشور مالدیو یا مالدیف چند تا نقطه تو اقیانوس هند، یک کشور 350 هزار نفری همه شافعی مذهبن. رئیس جمهورشون هم فارغ و تحصیل دانشگاه الظهره بزرگترین منبعی در آمدشون توریستیه زیباترین جلوه های هنری خداوند در زیر آب تو این جزیره هست امروز جلوه های هنرنمایی و عظمت خداوند زیر آب راحت میشه با صد دلار رفت آکواریوم رفت پایین یک تونل یک کیلومتری 500 متری برید تو زیر آب تماشا فقط بگو سبحان الله سبحان ربی العظیم ما اعظمک تو چقدر بزرگی که این همه مخلوقات پیچیده و ظریف و متنوع و رنگارنگ و آفریدید و برای هر کدوم حد و مرزی قرار دادید میدانی دادید امروز انسان اونقدر پیشرفته شده چون رو فعال کرده که بهتر از ماهی شنا میکنه اصلا شنا کردن کار است، ولی انسان طولانیتر و سریعتر و قویتر از ماهی شنا میکنه بهتر و قویتر و بلندتر از پرنده که کارش پرواز کردنه پرواز میکنه شما دیدید پرنده سی هزار پا پرواز میکنه؟ مثلا منجمه میشه؟ اگه یه شکافی تو هاپیما ایجاد بشه افرادی که داخل هاپیما تو سی هزار پا یفت می زنن پرندیی مقداری که رفت انسان چیه؟ رارفتن رفتن ها و مارها رو بهتر از خودشون راه میره راه رفتن حیوانات تیزرو دیدن انسان قدرتش حتی از دیدن عقاب و دیدن جغد میگن جغد در شب شست کیلومتر میبینه یه موشی یک ترگوش وحشی که همرنگ خاکه تکم بخوره اشعه داره زوم میکنه روش ولی انسان از همه اینها بهتر میبینه بهتر راه اینا رو چه؟ و کارشون رو انجام میده ولی راه خودش گم کرده با این وجود نمیگه اشهدو الله اله ایلا الله حالا خیلی دیگه مادر بزرگش دوست داشته باشه ازش خواهش بکنه پسرم بگو اشهدو اللہ الله میگه اشهد باشه به خاطر تو میگم به خاطر مادر بزرگ که دوست داره نماز بخونه به خاطر پدر بزرگش پی میبریم از این قضایه که برای شهادت دادن تنها علمم کافی نیست بلکه توفیق لازمه بعد همین بدلی سهرانشین میگه که وستماع و ذات و ابراج و, الارض و ذات و فجاج و, البحار و ذات امواج، افلا يدل على الواحد القهار وقتی مدفوع شتر دلالت بر شتر میده به این سادگی آسمانی و این همه ابراج و منازل اقیانوسوهایی با این همه امواج پرتلاتوم زمین با این همه فراز و نشیبهاش و فجاجش آیا دلالت در واحد قهار نمیده ولی وقتی این فکر تعطیل میشه پروفوسور هم مشروب میخوره پزشک سیگار میکشه پس هدایت توفیقی هم هست باید توفیق هدایت آدم پیدا بکنه نه هر هایی که تعریف خوبی میکنن تعریف سلامتی میکنن سالمن خیلی پزشکا تعریف سلامتی میکنن سرنگهای سلامتی رو تذریق میکنن به انسانها ولی خودشون سیگار تو در پس خوب شدن توفیق میخواهد اما صحبت خوب کردن توفیق نمیخواد خداوند در منافقین هم گفته این یقولو اداره رایت هم تواجه که هم و این یقولو تسمع لقولهم هم در منافقین میگه اگر نگاهشون بکنی بکنیم خوشد میاد اگر صحبت بکنن توری شیفتت جذبت میکنن که انهم خوش و نده مس تخته های خشک تو خالی که تکیه داده شده. پس اشهد و الله اله الا الله گفتن امروز خیلی علمی و در دسترس همه. ما میخواستیم بریم نمایشگاه کتاب پسرم گفت بابا برای من این اطلس هست، اطلس طبیعت. برای من این بخر من میخوام درباره طبیعت بدونم. بچه ابتدایی با میری نمایشگاه برای ما این کتابا رو بخرد میخوام درباره اسرار طبیعت بعد از مدتی که خیلی سری کتاب کردیم حالا میگه کتاب درباره نجوم برای من بخر حیوانات و مخلوقات زمینی حالا میگه درباره نجوم مسائل همه موجودات انسان با عقلش با تفکرش با علمش با قدرتش آمده چه به رشته تحریر و تصویر در آورده اما مخلوقات دیگه تو حسشون و حواسشون خیلی قوی تر از انسانه انسان با عقلش همه چی رو مسخر و رام کرده ولی حس برتر حیوانات دارن حس بویایی ب... یک میلیون برابر انسانه به همین منظور از سکه استفاده میکنم برای کشف جرائب بو میکشه. شامش خیلی قریز. پس انسان با تفکرشه که خلیفه خدا شده و جانشین خدا شده. این چه نعمت بزرگی و کجا خدا قرار داده. اصلا تو ترکیب عقلت اگه نگاه بکنی اگر خداوند عقل و رو پا قرار میداد. چی با سنگ و خار و سیخ و شن و تپه و خار و خاشک در حال تصادم بود ولی عقد اینجاست خار تو پاد بره هیچ بالا قرار داده تو این صندوق دورشم یه غلاف قوی بد مو هم گذاشته که آفتاب نزنه چرا انسان فکر نمی کنه فکر نیکنید که دین محمد دین ملاییه سرت بنداز پایین مثل میش باور بکنید میش از خیلی انسانها هم باهوشتره شما اگر دقت بکنید به میش و حیوانات وقتی که بهار میشه و زمین سرسب میشه خوب دقت بکنید به میش دقت نیکنید وقتی که سرشو پایین بکنه که میکنه که علف بخوره اول چی کار میکنه چون بعضی بوته ها سمی هستند محال قیچی بکنه اون میدونه چه بوته هایی رو قیچی بکنه شرف انسان به قدرت تفکرشه اسلام دین ملایی و دین آوردی و دین بدون تفکر نیست سه تا سلطان در انسان حاکم قدرت داره هر انسانی سه تا سلطان براش حکومت میکنه یک سلطان عاطفه و احساسات انسان بی عاطفه یعنی هیچ ولی اگر که زمام انسان دست عاطفش باشه بدبخت شد بعد داریم سلطان عقل حتی اگر زمام انسانم دست اقلش بشه بدبخت میشه. بعد داریم سلطان شرع و دین. آتفه ما باید آمیخته به تعقل باشه. و تعقل ما باید آمیخته به دین باشه. و فوق کل دی علم علیم. اقل کل اللهه. پس زمانی ما شهاده میدیم به اسلام، شهادتین به الله که مسبوخ به علم باشه اشهد ان لا اله الا الله با علم اون مراحل رو باید طی بکنید و بعد از اینکه مراحل رو طی کردید باورها تو اعلام بکنید حالا که یقین رسیدی که خدای جز خدای برحق نیست با همه اوصاف عظمه حالا اعلام میکنید تا بشریت بداند و همه مخلوقات بداند که تو عبدی کی هستید و بندی کی هستید اینجاست که میگه اشهد و الله اله الله. اگر تو دلت بگید بعد از شناخت اسلامت قبول نیست باید فریاد بزنید تا همه بدونن که تو چه کار هستید تو ملکی کی هستید تو معبودت کیه؟ عبد کی هستید؟ و اشخد ان محمد رسول الله آیا محمد با صفات عظمت شناختیم؟ یا مادر بزرگ خواهش کرده که محمد آدم خوبی بوده حالا پیغمبر بوده شما قبولش بکنید باور بکنید نه خدا میخواد تو این تاریخ خدا رو قبول بکنید و نه پیغمبر میخواد صلی اللہ وسلم تو اینتاری پیغمبر رو قبول بکنید چون مادر مزرگت ازت خواهش کرده یا مادر ازت خواهش کرده اگر اینطوری بود که همه آیات قرآن خصوصا آیات مکی قرآن توزیست 13 سال با کلمه شعور و تفکر و تدبر ختم شده همه آیات مکی قرآن در طول 13 سال یعنی بزرگترین خدمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عرب جاهلیت صدر اسلام کرد در قریش و در مکه این که قدرت تفکر اونها رو فعال کرد بس یعنی تو 13 سال نمیشون گفت نماز بخونید فایده نداره نمازی که فکر نباشه نمیشون گفت نماز بخونید نمیشون گفت روزه بگیری نمیشون گفت خم بشید نمیشون راس بشید هیچ, هیچ فقط گفت فکر کنید یعنی بزرگترین خدمت به اونها کرد وقتی که فکرشون فعال کرد خودش رفت بیرون با پای برهنه دنبالش افتادن مال و انبالشون رها کردند. قریش آمد مال و انبال و کرد اصلا با پای برهنه گفتن هیچی نمیخواد، کسی که عقل داره تفشش پیدا میشه کسی که فکرش فعال شد تن برهنش پوشیده خواهد شد و ظرف ده سال دولتی رو پایریزی کرد با همون پابرهنگانی که اموالشون مصادره کردند، کردن ولی سرمایهی به اسم فکر به دست آوردن بعد رفت همون مکه رو فتح کرد یعنی در خلال هشت سال فتح مکه سال هشتون هجری بوده تو هشت سال یه لشکر ده هزار نفری آماده برای مرگ اما خواهان صلح آماده برای جنگ با خویشاوندانشون خوب دقت بکنید با اهل محلشون و <تصفيق> اهل مکه پیامبر سال 8 هجری برگشت با ده هزار نفر ولی به تنهایی رفت دو نفر بودن رفتن فکر آدم وقتی فعال میشه اینطوری میشه پیامبر صلی الله علیه و بعد از بعثتش از جزیره العرب محدود خارج نشد. خروج فیزیکی نداشته به سفر اسرا و معراجش. سفری که به شام داشت قبل از تو سن نوجوانی و اول جوانی بود. ولی قدرت فکرش اون اونقدر قوی بود و وسیع بود که کل بشریت رو در بر گرفت. و در فاصله کوتاهی جهانی شد همه رو گرفت فکر وقتی فعال میشه اینطوری میشه افرادی تربیت کرد که دیگه اصلا نه سرد، نه گرم، نه دریا نه قیانوس، نه باد، نه باران، نه گرسنگی نه تشنگی، نه بیابون این فکر وقتی فعال شد به انسان نیرو و نور و قدرت و توان و خسیگی نافذیر میدن و دنیا رو فکمند کردن همه چیز تسخیر فکر انسان میشه تو بحث تفکر ستا تا مطلب هست یکی فکر کردن یکی مثبت فکر کردن یکی جهانی فکر کردن و فکر زمانی چتر نجاتی که فکر انسان باز بشه چتر نجات اگر تو آفه ما پری پایین بسته واشس خود میکنی چتر نجات هم دستت باشه این فکر انسان ها باید باز بشه تعال میشه. این عربی که تا دیروز چه کارهایی نمیکرد شد استاد بشریت معلم بشریت چه شخصیتهایی رو تربیت کرد آیا ما گواهی میدهیم و اشهدو ان محمد رسول الله دروغ نمیگیم گواهی بار بعد مبنای شناخت باشه چقدر شناخت داریم که میگی من تو رو میشناسم میدونی گواهی دادن یعنی من تو رو میشناسم قبول دارم و چطوری میشناسی کدوم قسمت زندگیش رو میشناسید؟ قهرمان و قهرمانان بود بطل الابطال یک مدیر بود یک برنامهریز بود یک سیاستگذار بود یک فرمانده نظامی بود یک روانشناس بود یک جامعه شناس بود ولی بالاتر از همه اینها نبی و رسول و هدایتگر بود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله پس شهادتین باید بر مبنای شناخت باشه تا نتیجه بده بعد از اینکه اینو اعلام کردید حالا مسائلی روی این قضیه مترتب میشه حالا تو اصل قضیه رو پذیرفتید حالا باید به امر کسی که به عظمتش گواهی دادید باشه حالا باید در مقابل این شناخت و بزرگی تعظیم بکنید حالا میاد نماز نماز یعنی تعظیم در مقابل عظمت و بزرگی که خودت اعتراف کردی و گفتی اشهد ان لا اله الا الله تو خیلی بزرگیت بلا فاصله اقامه نماز بعد از اینه تعظیم وقتی انسان به عظمت چیزی پیوورد کردنش میکنه تعظیم میکنه نماز تعظیم عملی باورهای توست باورهای تو عظمت رب این باورها باید چه تو رفتارت متجلی بشه اگر نماز نکندی تو عظمت رب یعنی شهادت این تو نغز کردید و نماز یعنی جایگاه عبد از عبد توازو زیبنده است و از رب کبریا و بزرگی و جلال جایگاه ها رو نباید جابجا بکنید جا ظرفیت تو فقط برای توازو قالب شده در نتیجه وقتی که عبدی که باید متوازه و فروتن باشه متکبر میشه خارج از گنجایش و ظرفیتشه. شما گیدید عبدی متکبر بشه بتونید زندگی درستی بکنه؟ اصلا متلاشی میشه تکه تکه میشه چون که آمده چیزی رو تو کالبش ریخته که ظرفیتش نیست کبریا ظرفیت الله عظمت و جلال و کبریا ردای الله و خداوند در حدیث قدسی می که کسی که در جلال و کبریای من در لباس من با من منازعه بکنه قسم تو دو نصفش می تو تو یه متکبیری اصلا قوی تر از فرعون امروز بچه های ما تاریخ فرعون رو چقدر مسکین بوده؟ قوی تر از قوم عاد و ثمود به کجا رفتند؟ قوی تر از نمرود؟ قوی تر از قارون از نظر اقتصادی؟ ایمان یعنی ظرفیت سازی برای عبد بی ظرفیت تو دنبال جلال و شکوهی تواظه بکن. من تواده ار الله رفعه. اگه تو دنبال شکستید تکبر بکن. کل قرآن اگر ورق بزنید هر 6666 آیش فقط دو تا مطلب رو میگه. میگه جایگاه رب کجاست جایگاه عبد کجاست. این کنه عبدو ها ایا کنست. بلا فاصله بعدش میگه اهدن از المستقیم قبلش چیه؟ الحمدلله رب العالمین این جایگاه ربه الرحمن الرحیم جایگاه ربه مالک یوم الدین جایگاه ربه حالا جایگاه خودش وقتی که جایگاه رب رو اعلام کرد حالا جایگاه خودش هم شناخته یا که نعبدو به پای خدا میفته و ایا کنستعین اهدن سراط المستقین سراط الذیر انعمت علیهم غیر المغدوب علیهم ولد دالین با چه توازی دعا می منو بپذیر منو هدایت کن عبادتمو اختصاص به خودت بده تعظیم و تکمیر و تحلیل و همه اعمال رفتارم جایگاه تو جایگاه روبیته جایگاه ها رو جابجا جا جا نکنیم خراب میشه همه چیز. صفت الوهیت و قدسیت های کازب به بندگان خدا ندید از خود تاغوتی درست نکنید خداوند حتی به پیامبرش گفته: حق نداری مردم متوجه خودت بکنی تو عبد منی فقط یک چیز به بندگان من بگو انه الله و اشتن بود تاغوت نه از خودت یه خدایی درست بکنید ولی خیلی از ماها و امثال ماها مردم وابسته به خودمون میکنیم به جایی که بگیم بالا یک تقدسگرایی ایجاد کردیم كاذر که زیرش است اگه دستمون نبوسیدن ناراحت میشیم اگه خم نشدن ناراحت میشیم اگه پیشانیمون نبوسیدن ناراحت میشیم اگه القاب بهمون ندادن ناراحت میشیم جایگاه ها رو جابجا جا کردیم بالاترین درجهی که خدا به یک انسان داده این که پذیرفته که تو عبد منید هر کسی خدا لقب عبدش داد این بالاترین تاج در دنیاست. یا <صفيق> یا ایتو المطمئن، نفس المطمئنه ارجع الى رب کرابیتم مردیه فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی بعد از این تعظیم فکری و اعتقادی حالا خم شدن و سر به سجده گذاشتن حالا لذت بخش میشه حالا میاد تو سوره توبه هم همینه از سائحون بعد میگه راکعون از ساجدون اول سیر و سیاحت فکری که فکرت رکوب بکنه تعظیم بکنه و دلت سجده بکنه حالا که مرات خم شد نور علی نوره اقامه نماز نشانه تشخیص دادن عبد جایگاه خودش اینجاست که خدا حالا بلندش میکنه میگه من تواد علی الله رفعه بعد میاد روزی رمزان دوباره یک اعمال ظاهری دوباره جایگاه وقتی که تذیروفتی تعظیم خدا بکنید حالا خداوند مرحله به مرحله با برنامه های متنوع به تو عبودیت تزریق میکنه. یک عبودیت با نماز همه عبادت ها دو تا خاصیت دارند. و یک فلسفه آشکار تو هر عبادت ها تو هر عبادتی یک فلسفه آشکار و فلسفه های جانبی تو نماز فلسفه های زیادی هست اما بارزترین فلسفه نماز تواضعه. و هر عبادتی دو چیز تولید میکنه یکی نور و یکی نیرو خاصیت هر عبادت اینه نور تولید میکنه که راه پیش رو تو ببینی و نیرو رو تولید میکنه که بتونید تو اون راهی که درخشندگی داره با این عبادت توان راه رفتن پیدا بکنید و بدرخشید و همجور نفت برسانید و تحامل بیافرن. اینا تنها عن الفحشاء و المكان. الصلاة نور. حدیث. بعدی رو روزه. روزه بارزترین فلسفه روزه پرورش اخلاق صبره. یعنی صبر بر عبودیت صبر از گناه ضد عبودیه و صبر بر مصیبت ها و آزمایش ها روزه سه تا صبر رو ایجاد میکنه فلسفه های زیاد داره نو دوستی و فلان و یک رنگی و نمیدونم فلان و خیلی مسائل دیگه اما بارزترینش پرورش اخلاق صبره معروفه که ماه رمضان ماه است و ماه فقه و غزوی بدر در ماه مبارک رمضان بوده غزوی فرقان بش میگن و هر پیروزی که نصیب مسلمان شده نشانه استقامت و پرورش اخلاق صبره. این نما الصابرون اجرهم صابرون حساب هم به غیر حساب رو زکات <تصفيق> زکات هم دوباره یکی از میادین عبودیت و تحقق بخشیدن به عبودیت و خیلی زیباست. تجار و سرمایهداران افتخار بکنن که مال زکاتی دارن زکات بدن. پول خیر دارن صدقه بدن. امکانات دارن که در اختیار هم لوان خود بگذارند ما پنج تا رکن اسلام داریم تو سه تاش فقیر و تاجر مشترکه دو تاش منحصر به فرده یکی زکاتش و یکی حجش برای تاجر و سرمایه داره تاجر نباید از خداوند دو تا تشکر ویژه بکنه فقیر آه میکشه که پولی داشته باشه امرار معاش بکنه تا چه برسه که صدقه بکنه خیر بکنه مدرسه بسازه مسجد بسازه بیمارستان بسازه ولی میبینیم تاجر زکات مالش نمیده خیلی عجیبه خیلی عجیبه یعنی مالی که خدا به تو داده یک توجه ویژه به تو کرده که رکن چهارم اسلام نصیب تو بشه و مالی که به تو داده که با پولت بری حج رکن پنجم اسلام هم نصیبت بشه خیلی عجیبه بارزترین فلسفه سکات نو دوستیست ترحومه های زیباست و فرهنگ زکات دادن اینه که یکی از میادین بزرگ عبودیته رسیدن به عباد الله خوب دقت بکنید نه تنها خدمت خالق کردن عبودیته خدمت عباد الله و بندگان خدا کردن به قصد رازی کردن رب تحقق بخشیدن به عبودیته هر جایی که صحبت از تعزیم خداست و حق خداست صحبت از حق عبد و عباد الله اقیم الصلاة و الزکاة. قالوا ما سلکكم في سقر قالوا لم نكو من المسلين ولم نكو نطعم المسكين و كنا نأخذ مع الخايزين. أريت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحذو على طعام المسكين تشفیق نمیکنه کسی به مسکین و فقیر غذا بده حتی تشفیق زبانی فلسفه زکات خیلی وسیعه در اسلام هیچ ممانعتی نیست و هیچ خلیفی نمی تونه فیلتر بذاره برای درآمد فرد و حد بذاره که تو این حدت نباید از صد میلیارد بیشتر تجاوز بکنه سرمایه. فقط یه حد میذاره که گذاری تو حرام نباشه و مصرفش تو حرام نباشه در مملکت اسلامی. بادید باز نگاه میکنه. بادید باز تاجر مؤمن سر سالش که میشه قاصد میفرست پیش فقیه بیا زکات مالم حساب کن. قاصد میفرسته بیت المال که کسی رو بفرستید که زکات مالم حساب بکنه تحویل بدم. پس هیچ حد و مرزی برای سرمایهدار شدن وجود نداره. فقط حد و مرز برای حلال و حرامه و در مملکت اسلامی کسی با سرمایهدار شدن کسی حق نداره بهش چپ چپ نگاه بکنه امنیت کامل تلاش رسول الله صلی الله علیه آله برای عبدالرحمن ابن عوفی که مهاجر بود با پای برهنه آمده بود به مدینه تحویل یک انصاری داد گفت این برادرت چی داری نسکن و عبدالرحمن گفت دو تا بستان دارم هر کدوم دوست داری مال تو هر کدوم تو انتخاب میکنی تو برادر مهاجری منی و رسول الله معاخات بین ما قرار داده بارک الله فی بستان دلنی علی سوق و من دوتا تا خونه دارم بارک الله فی بیتک دلنی علی سوق راه بازار نشونم بده وقتی که افقت نفس همت عالی و نیت کسب و کاسبی و تلاش عبدالرحمن به رسول الله رسید رسول الله صلی الله علیه وسلم براش دعای برکت کرد عبدالرحمن میگه که اگر به سنگی پام برکرد میکرد سنگ جا به جا میشد فکر میکردم که یه گنگی زیرشه به برکت دعای رسول و افت نفسش و قناعتش ولی وقتی قافله 700 و میآمد میامد یک جا با خدا معامله میکرد، عثمان نورین هم همینطور، لشکر روز سختی را به تنهایی تجفیز کرد عمر فاروق هم همینطور نصف مالش رو تقدیم کرد حضرت عبو بکر هم رضی الله عنهم اجمعین کل مالش رو تقدیم کرد چقدر ما خوشحال میشیم شیم که تعداده کاسبین و تجار و سرمایهداران مؤمن روز به روز افشایش پیدا بکنه و اونقدر بزل و بخشش و اشتغال و کارآفرینی و در کنار دولت کارآفرینی و نه اینکه صبر بکنن پولشون زکاتی بشه زکات مال بدن و عزیزی بیاد دستش دراز بکنه زکات بگیره تو فرهنگ دینی ما وقتی میخوای زکات بدی غیر صدقه است باید بگی این زکاته به فقیر بگی این زکاته اگر نگی تو کوتاهی کردی <تصفح> یعنی فقیر رو مدیون خودت تا آخر عمر دست به سینت باشه با پولی که مال خودش بود حق بشه تو پرداخت زکات باید به فقیر بگی این مال زکاته یعنی مال خودت داری میگیری که <تصفح> فردا به سلامتم به سلام به سلام نکرد جواب سلامتم نداد مال خودش گرفته پیشت بوده ولی ما رو با زکات دادن مصادره میکنیم دهت من بهش میدیم تا آخران برده ایمان میشه زکات دادیم ما داریم اشتغال داریم زکات داریم صدق غیر از زکات داریم قرض اینا همش مراتبه علما میگن اگر سرمایه داری سر سال صد میلیون زکاتش میشه منتظر بشه که سر سال برسه زکات بده کار خوبی کرده و خوشحال باشه که داره زکات میده ولی اگر دو ماه قبل همین صد میلیون رو یه کارخانه یه شرکتی راه اندازی بکنه که به زکات نرسه 20 نفر اونجا اشتغال ایجاد بکنه از اینکه منتظر بشه تا سر سال برسه صد میلیون زکات بده خیلی ثوابش بیشتره حتی اگه نفر 500 هزار تومن هم بهشون بده. سال دیگه هم دوباره منتظر 500 من هزار و اونطوری چه ماهی سی 400 هزار تومن طول عمرش گیرش میاد. چه بسا خود اون شرکت هم بشه فردا. یه خاطره زیبا و شنیدنی. دوستانی داریم تو دوبه. <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه کارگری که الان شریکدار اربابشه، تعریف اربابش میکرد. و دعای خیرش میکرد میگفت خدا جزای خیر به فلانی بده روز اولی که آمدم در مغازش کارگر ساده بودم حقوق بگیر نیاز به زکاتم داشتم کفاف نمیکرد ولی ظرف پنج سال الان من هم شریکشم همون حقی که تو دکن میام حاضر میشم یه درصد اضافه میگیرم و خوشحالم که ظرف پنج سال الان طول زکاتی دارم من کارگر صاحبه گفت فلانی این خدمت به من کرده خوشحال بود که الان داره زکات میده دیگه زکات نمیگیره میگفت این خدمت به من کرده ولی ما میخوام که کارگرمون تا آخر کارگرمون بمونه خوشت نمیاد کارگر یه روز ارباب بشه مثل خود به جای 5 نفر 50 نفر باشید زکات به دو معنیست. به معنی رشد و نمو و به معنی تدتیر. و بین هر دو معنا ربطی وجود داره. هر چیزی پاک شد رشد میکنه هر چیزی پاک شد رشد میکنه پس زکات سبب پاکی مالت میشه و سبب رشد مالت میشه. نفرس. من یه مثال می مسائل رو میذاریم به جلسات بعدی <تصفيق> شما سعی بکنید غیر از زکات ده درصد بیس درصد سودتونو غیر از زکات اختصاص بدید به کارهای خیر و آمول منفع یه مبلغم برای فرزالحسنه یه مبلغ زکات بدید رو به سه قسمت بکنید یه قسمت برای کیشابندانتون سلیقه رحم بکنید یک قسمت برای آشنایان و دوستانتون که انتظار دارن یک قسمت هم بدید به انجامنها برای کارهای عمومی یا انجامنها تحویل اگر 100 میلیون سرمایه داشته باشید ده درصدش 100 صد میلیون سرمایه مال خودت ده درصدش دو و نیم درصدش زکات از همون ده درصد حساب کن یعنی نوت میلیون سرمایه مال خوده نوت درصد سودم مال خودت، ده درصد سوده دو و نیم درصدش زکات خارج بکن دو و نیم درصدش سله رحم بکن پنج درصدش غیر از زکات صدقه بده این پنج درصد برای سدها هزار سال و اون نود میلیون صد میلیون سرمایه و نود درصد سود برای پنجاه سال انصاف است متوجه شدید چه گفته؟ بعضی ماآق زکات زیر چشممان خیلی بزرگ میشه بیبینی فلانی مثلا صد میلیون زکاتشه چقدر پول داره صد میلیون زکاتشه حالا یه جانی میتونه بده زیر نظر سنگین میشه اینطوری تصور کن صد میلیون سرمایه مال خوده <تصفح> 50 سال بیشتر عمره میکنید نود درصد سود خالص مال خودت همش برای 50 سال ده درصد فقط سود نسرماید دو درصد و نیم زکاتش کم بکن از همین دیگه میمونه هفت درصد و نیم دو درصد و نیم هم سله رحم بکن دل قاموخشات به دست بیار دیگه میشون پنج درصد پنج درصد برای هزار سال اگه عمر آخرت هزار سال باشه بعد از مرگ ولی هزار ساله، پنگ درصد، صد درصد سرمایه برای 50 سال از این دیگه اصاف بالاتر، ولی همین هم بخیلی کنید طرف زکاتش هم به زور میده. هرچی دم دستش افتاد، بعض دیگه عادت کردن جنس های کالاهای اسپاتیشون، که دیگه از رده خارج شده چه؟ جز به حساب زکات میکنن. طرف زنگ میزنه که یه سری پارچه اسکاتی و نمیدونم دست دوم ته انبار مونده اینا میتونیم حساب زکات بکنیم اینا رو زکات بدیم؟ یا شنیده که ملک و املاک و وسایل شخصی زکات بهش تعلق نمیگیره حساب میکنه که 200 میلیون پول زکاتی داره قبل از اینکه برسه یک ماه یک ماشین رو چه بز وارد میکنه دویست میلیون میکنه زیر پاش زکات که تمام شد بنزش رو یه خونه به دویست میلیون چه؟ میخره تمام که شد سالش تمام شد خونه شخصیمه شما سبب میشی که برکت از زندگیتون ده بره از حوصله همه شما تشکر میکنم برای همین شما آرزوی موفقیت هستیم در خدمتون انشاءالله در نماز تعد ساعت یک و برنامه های بعدی شب‌های آینده التماس تایی خیر دست های همدیگر رو بفشارید همدیگر رو حلال بکنید یه لبخندی هم تو صورت همدیگر بزنید از حضور همه تون بین های سفاس گذاریم و شما رو به خدا می و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین